یگرانی عزیز و خوشویز سلاوتن لیبه خوشحالین لبشی هشتاو چواری خوند نوی کتیبی چشتی می جیوری هجاری مکریانی حتی فرمون لگل بن. هجاری مکریانی بست لو ستانی جیانی خویدکا که, که سروی که یکیتی ادیبانی کرد بوا. هجار ده نوستید که لبغده دوای امتیازی مجلی کردی منده کرد دولت دیگود یه ما امتیازی ست و سیازده نشرمند دوا ایتر جگه نماوا. هرچی داد منده دا کرد که ست به سیازده با عربی ده بیچوالی کردیشی ده گلبه بو اویش نه یاری ددانی دولت نه اعلان نه چر کرد بو کو کر او لا لامویاتوانی من هجت جماره درکن، که واده بو جماره اک من دکرده هی دو مانگ. لزمانی سروکیاتیم لیهکیتین و سرانی کرده، حمدامین منگوری که وقتی خوی لسره دگل حمار رشید خانو ما مستابو لرانیه پیدا بو. دیوت فلانکس خلقی رانیه با ام بشین ملاده بدارو برد والهات نسرم. به هزار ناری علی رزگارم بو. حالاتم دادم بپرسه و تم چیتلی ق کتابی چون چومه ماریخ نسرای عبدالله بی نهیدم کردو تکردو چاپ مکردوه ملر رانیا کوالا وژل سرشن دنجی خلکی لداوم او کافر کفری کردوه جنوبیا ولا ماریخ نیا ورن بیکو جن غزايا لترسان خون نقل کردو تا تواله وتم کاکا پیروز باید لیکم ملر رسولی صادقی کشاعیری بود بنایی ادب لپسوی ماموستای کرانی قرنیا غابو بو بو مرید ی وشکی خیامو لایوابو تازه مردو زندو نابتا لپسوی بفیتو برد دریان کرد هرچن خوای بر رحمت سوای استاج زور امتی هیو بنیم چ پیغمبری کی ازانن هر بیناتو بو یشتکی واو دلین لسردینی منگوریه شویک بناو شوی شعر من بو من که بناؤ سرودیه کتیکم خامکیش و گوگریک بوم هر شاعر و شعری یکی تری هالد سنجان شرکو بیکز شعری ک منی خنده و لدمی نهنج دا کل دیوان کم دا چابک روا و تی امشیر و امشی کبوم من دال نسر روا معناشیتی دانیا بلام رنگ من دال حزیلیب کن من و جواب نهاتم تنانت سعید ناکامش کد پیش دا لای خم او شعر بله و پسند بو پیش لوا باش زرباش چونیتی امرای کوردم دبر دستی با اسیدا باسکردو دفاع اله نکردم کړم هرچند خومل مو ابو ام شعرن بو من دالی 20 هتا 90 ساله و تو اما دیسان ظلم خوښ بو ک شایر شعر کوو جو ګران به شعر من دالانی زانی ک دګل صدام حتمه و یوسفیش یوسفیج لتهیاره ک دا بو کلا کرکو ک و هلی به تیاری دک هاتین لفرودگا و دگل حردان تکریتی سواری ماشین بوین که بمنګې نه مالو لرگه حردان پرسی ډیاره هزار شاعر کی بنو بنگ بارزانی زوري تعریف کرد صالح یوسفی وتی من له کردان ده کس شاعر ترمو ناو بنگم یک زوره جا جیکه بزانی او فقیره له عمر د طاقت شعری کی بنوي حوارو نوسیو او شهرد به خوې بزانیه چون مې سیر نامینه هر چونګ بو به هزار اذاب او دلتنګي سالم له سروکایتی کیتی دا گزران. لەم بیندا دۆڵە داوەتە بوناردین کوورن لە کۆنگری عەجيبانی عەرەب لە ئیربیت لە باسرە بجداربن وتم منناچم جێگێک باسی کوردو ئەدەبیاتی کوردیلە نەبێ من نازانم تایفی شیعری عەرەباند کامو سلاوت لە دیداری بەس بدەم ناچار یەکێ تری لە یەماچو گەر ئەگەر بەتمایری ددانێ چی پاری دۆڵاتیش بوبین بە یەک جاری ھومیدەکا فوتە سەر سال دوو موتیان لە ھاوڵەرکۆد بیناو ھالب بالام پولمانیا 500 دینارم لملا مستفا ورگرد کالب جردنی ادیبان کورد بر یوبچه لهولیر زور به حسابو کتاب کنگرەم سازکرد هشتا هر رئیسییەتی ادیبان بوم که دولت قبوولیکرد کاری کرد داب مزری من نشان دست نشان کرد که ببما اندم بو کی بو سامی که وزیر کاروباری کردستان بو عشقی او بو که خوان کرنامه دکتورای زورتی بچن من زورم حاول دگلدان که کردی زن باشی بو حال بجیرن نوک اوانی دکتوران لازمان خارجی کنده های من یکی وک همه ملکری مو شکر مصطفیم پیلا دکتورکانی کردی نزن چاکتر بو دیارق سی اوان لسر بو کور دامزره داندامی دا دامزره نری بودیاری کرا که امان بون إحسان شيرزاد وزير بلديات كمهندسي معماري وحقوقه. شيخ محمد خال كان وسيكي مشهوره قاضي شاري سليمانيا. كاج مسعود محمد كري جنابي ملايكوي كهم حقوقه هم علمي عربي زور بنو دكتور كمال مزهر كالا لينينغراد دكتوراي لسر تاريخي كرد لقرني بيستما ورقتوا. حجار ككراب أندامي پنجم دكتور عبد الله نقش بنديك ونملو رئيس كل حساب دار العراق. دکتور پاکیزه رفیق حلمی که دکتورای له آلمان لسرزمانو ادبی ابری هبو دکتور عبدالحمید اتروشی که قاضی سنی بوله بغداد زمان کرمنجی زنی علالدین سجادی که نوسری میژوی ادبی کوردو زوړ کتابانه دکتور ناجی عباس که دکتورای له جغرافیه دایو خلکی امدکساب رسمی نوی دسته در مزرین رو، سرکی منلین رو، ریاست جمهوری با بیانش رسمی قول بولسر کشن، یه ما لقب اندامی کاره من درائه. زور کسی تریش لخوان کرنامه دکتر روشنبیی کردمندگل خوخست که لالیجنه جربا جرکنی فرهنگیده دا بشداری منبکن. هفته دو یا سی جر کوبونوه کاری فرهنگستان من بر رویده برد احمد حسن بکر چل هزار دیناری بودزه بو نردین احسان شیرزاد که رئیس من بو وکیلی شرکت گلبنجیان بو لعرق ده و ای کرد گلبنجیان امارتیگ لسر حسابی خوی با کار زانیاری درست که که پتر لدو هزار دیناری تیچو چپخانه که لینو تاپی من سازده یک دنیا کتب زور به نرخی لسر کرد و شتیتر کو کرده و کت زور لکتیب خانه کوریزانیاری عربان که تمنی بچل سال دگیشت دولمن تر بو. چند کی که کردیمان چاب کرد من شرفنامه خوم کدو جر نوسی بوا و نیشاندان چابی کن. که تماشای که اگر پسندی کرد لچاب بدره. وتیان دکتور ناجی عباس ویدیم راوستن. اوان نوسی من خیامم چاب کردوا. اگر ناجی عباس توانی پیشکیه من لسر خیام بروانی بر وخوینی قبول ما. دکتور کردین ازانی، ویدین ادید کید پی باشه وطم؟ علا ادین سجادی فارسی باش دزانی و کردیشی زور باشه. برانبری نیوان متنو ترجمه بکا. دکتور کمال خوی لشرفنامه ترجمه روسیده یاریده مترجمه کرد وو تشکری لکراوان. کگ مسعود همو تن به ادیبه که گوره ازانن. هر یک لوسی کسه پسندیان نکرد بوم چاب مکن اوان هر سه پسندیان کرد او جار هراله لسر حقی تالیف پیدا بو د ان وخت ستی دبدین ستی د لقازند یان لغشت هیڅ متقم نکرد قرار در ستی د لقیمتی گشتی ورگرم امزا کرا وتم zarar تن کرد اگر جګه له هیچ حقیقت دا وای پول تن نخوم کردایم حاضر بوم 500 دینار تن بدهم هر بوم چاپ بکری اعلان کرا که کام چاپخانه به کمتری دک هر چابخانه یک دیدی دیگود او ختمان بو نخوین ریته و با جاریسی هم ناچار پتر لپینج هزار روپر شرفنامه منوسیه و زور شوان جمله لبانگی سبینه دبو من هر در نوسی دگل چابخانه یکی بناوی چابخانه نوع من لشاری نجف پیکاتین با شرطی که هر روپر یکی من با ایمزای خوام لسرین نوسم چاب کری او حقی نبی چابی که دو فرمایند نردهک تیب خانیک لخیابانی متنبی غلطگیریم دکر دودم نرده وا جاریوا بو فرمای کم چرده جار غلطگیری کرده وا کده هاد بو چاب آمده بی خم له بگذار و نجف آخر نمونم چاب کراوی دادید جاریوا بو دو شوال نجف دم مموا گویان دو هزار نسخه بی زورم داد کرد کپتر بی گویان چنگ تیب من چاب کردون هزاریش شی روا هشتاد شار گتم من پولم نیه سطی داکتی بندنی. باقی رو هر توانی پیان بکنم به 2050 نسخه کدوساتو پنجای خون بیاو 2025 ببینه. نرخی دینارو ربع دانره که دبو بیستو پینز تمن، کتیب فروشی هولیرو کرکوکو سلیمانی ندیده کریانو تا ستی برگ دیجیره بو آوان من دنرد، بازار رشی پیدا کرد زرزو با پینز دینار هر فرقی دهد، دو ست نسخه خو مور گیرد با قانونی کور ست نسخه با نسخه بخشش به، نه اندامه. لا پاییز سالی 1972 درابو بچه بخانه، لسرتای هایینی سالی 1000 و صفح توصی یک بود. دعوتیک با کوریزانی ریکورد لف françاوهات که لکونگر رنجلات ناسانی دنیا دا که هر بچوار سالجارگ دبستی را بچ در بین دکتور کمال مزهر و منیان دست نیشان کرد. به تیاره گیشتی فرگی اورلی. خانم جویس بلو د ګال لاوی کی سرخر چاوانو ری دکردین 27 سال بو برای لا لکلاس دومی ابتدائی لا بوکن به و ته بو استال لا فرانسایو بو دکتورای شیمی د خوینه به سرخرکی لا دور ناسموه ب دیتنوی ګریان مهاد جیانی او چن سال لیکل برانم وکشریته کی سینمای هاتو برچاو صادقی ابرم کبه نو مولانا خالی بوک موکرابو 88 بو بوکمل هم باوکی خیبوم هم دایکی. چونکه دایکی لپاش سالگ مرگی بابم میردی کرده و بچه هیش من داله ی زور خن شیرین بو. جاری و هبوج نانیده لیان دتزین. شد دبون تاب ویانده ناینا. با. همو دلوجیان و ایمانم بسر خوشیستی او دا ساخ بو بوآ. با. کبو بوچوار ساله که مقدرسم پیاد. زور زیرک بو که هتی نباکن ل مدرسه دم مزرن. همیشه ل نمرک و کرناوی هر بو. لبیر مجاریک لما صالح شاطری بوم لسابلاک و تیان صادق لبوکان نخوشه لبیرم چوک کوش دا پیکم بطای گوروی رام کرده در لکولان کوشکان انبوه نمو بپلخم گیاند ولای شخی زمانه وای حال داشتم که صادقم لکلاسی دوهمی سرطه بجهشتو لیم بو بوداخو حسرتشی گوره تنیجاری که جزیره سوریا داشیم یعنی پاش یازده سال دوری نمه صادقم که صادقم لترانه پاره که خبری توی اندومه تی که لقبور البیضی باسی خوی کرده بود که دوی دیپلوم ورگرتنی لدانشگاه پزیشکی قبول کرده بلام چون که عبدالله برای دستی باش ناروه پزیشکی مخارج و ماوی زوری دوه وزیه نوه لدار المعلمین برزده ده مزره خبرم لیبرابو. برابو اوادیسن لفرنسا دی بین موه زورم سپاسی خانم جویز بلوه کرد که ام دیاری بقیمتی نیشنده جويس بلو جنکی جولقی فرنسي بو کبه من دلی لمصر جیابو عربي مصرياني وک بلبل دسانې کاری لسر ادبياتي کرد دکل درسکی باسی کوردی لسر بوند اوتو دغل ډاکټر کامران علي بدرخانو خان مکی د هاتبونه نو پردان لشورش بو بونه آشنا هاتبو بغداد شو دعوتم بو کړدم لکاری زنیاریش ده چند روشی که پیکوا بوینو دگل دکتور کمالو مندا زور زورنیوانی خوش بو و ابزنم هر اویش سپرده بوی که لکاری زنیاری لکمالو من بگیرنوا صادق مالکی گرته بو لطبقی همکفی خانویی که هود طبقی ده لنزیگ سور بون قرار دره من میوانی اوبم جویز خانویی که بطالی پیس بیره بو که خوانکانی سفر چوبوند اویش دره با کمال، کلیبن یا پاری اوتیل ندهند، خوشککی جویست لنرویج و ماشینی ماشین خویوه هاته بو ایتر ماشینی جویست و, ماشین جویس و خوشککی که اویش عربی لحجه مصری باش دزانی همیشه در بردست منده بود. لو روژانه ده کتازه چون صادق چوانور بو جنکی با منداله کی سواوا بیت فرنسا لترانه و روژانه ده چوان فرگو تنیوارو نده هاته و روژانه ده چون فرگو تول المال با تلفونم کردوای يخشالم تازك ريوا لكار ويستاوا دو جار مهندس هاتوا للمال لبوم او رجم مهندس نهاد صادق لداخن شقيقي ده يخشال هلدا وكار كود مهندس هات وتي هيت عيبينيا وتي باله فرشاق تهالدان بو نمزاني بو لم تبقي هم كفا حمام هبو بالام لا تباقه كاني بالان بو د ان ګوت لمه حمام زور کمه حمامي وکولاتي خوشمن دي ان ګوت او هم عترا ک دروز دکریو ساتن سالا جګی عتری هر باشه هر بویا کبوګنیوی خونه شورند اپوشه جنومنداری صادق هاتن اتر لبابت چیشتو نانیش حسینوا خوتازکر کی دبو بنوی شاهین کمن وتم دبنوی شاهوبه بنوی کیوی کوردستان جنې صادق چی سید عبدالله ایوبیانی خوان درمنخانی محباد بو که پیو حق بلی زور کابانو دستا خوش بو ناوی نصرت خانم که استاش هر جنیتیو دایکی سیم مندالان بناوی شاهو رامینو سارو لتراندجی روزانه پنجره کولانم دکرده و اتین لفرانسا کس پنجره ناکاتو و رنگ جیران پیتو ربن جمع ندا چه چند مالا جیران که تریش چاویان لمن کردو، پنجرهان ده کردو و هیچ دنیاش خراب نبو. که لسر کولان بات د دا داوا برو میترو دوکان جوچکا مریشکی یک روژه و دو روژه لی افروش را. پشیلی که زلامی زردی ملوکلک استور پاسوانی جوچکان بو. لناو ویترینک دادنوست. جوچکا بسر دمو چاو کلکو لقیده حلپزو حلپزیان بو او پرخیده هاد. اگر کس یک دستی لشوشه ویترین دده، راستاو دبو کلکی قنز دکردو ده اویست بگش دوشمنی جوشکانده بچه. زورم پی سیر بو. زور جار لدیاری دوستم. میتروی پاریس زور دور و دریجو زور کلکی لیدب نوا. بلان بجوانی و ریکوپیکی میتروی موسکو نیا. شوانه بسطان لعوارو بیمال و حالان لناو میترو دادنوستن. صادق نخشه اکی چکالی میتروی دبومی که گم نبم کیم بیستای با اشاره نیشانم دادوده چوم جویز زور جگیوهی وای زانی که نهار و شمی هرزانو با دانش جویان بو زور من لو بهره دبرد روش یک دگل جویز ببر مغازه یک دار رابردین لسر پلتوی که جنانه که زنم کولی چه بونو سرابو هزار فرانک که دیکرده سیازده هزار دیناری عراقی جویز قصه ی جن جنه مغازه وتی کرد و تی اوتو ما با اگرانه او, او ا جنگی میلیونری آمریکایی که دایبینه به هر زانیشی دزانی او چک یک دنوسیو دایکات بر. عزیزان و خوشویستان لیره در حتین کوتایی بشی هشتاوچواری خوید نوی کتیبی چشتی مجوری هجاری مکوریانی سبینی و لبش گیتر در پشموی گشتکی هجاری مکوریانی تن لفرانسا بود جارینوه